چاکرای یک، تماما متصل به انرژی حیاتی سمین مکان، پایه ستون فقرات، موضوع، ارتباط با سمین صفات مطلوب، متصل به انرژی حیاتی سمین، امنیت، ایمنی، آسایش خاطر تمام و کمال چاکرای اول سفر آگاهی سعودتمند را با پیچ و تابی شیفتنگیز به پایان می رساند. آگاهی سعودتمند دیگر محدود به ذهن و بدن شما نیست. اکنون وارد دنیای فیزیکی می شود و به دنیای بیرون دسترسی پیدا می کند تا همه چیز اطراف شما را در آغوش بگیرد. احساس می کنید کاملا در خانه هستید. مهم نیست کجا هستید، زیرا در خانه و در خیش حقیقی ساکن شده اید اکنون دیگر نیازی به ترس از جهان به عنوان ماهیتی ذاتاً مخاطر آمیز، ناامن یا بل خطرناک نیست این ساعتی از آگاهی است که بسیاری از ما خوشبختانه از آن استقبال می کنیم زیرا چرخه اخبار 24 ساعته بارها و بارها این پیام را تقویت می کند که جهان بلقفه بسیار خطرناک است. با این حال تغییر چشمگیر در دیدگاه مویسر است و هوش خلاق میتواند آن را برای شما به انجام رساند. چاکرای اول که در پایه ستون فقرات قرار دارد معمولا چاکرای ریشه نامیده می شود، زیرا همه چاکراهای بالاتر در این چاکرا ریشه دارند قبل از اینکه زندگی شما اوج بگیرد باید پایه‌ای مطمئن وجود داشته باشد به طور سنتی چاکرا اول نمایانگر اتصال به انرژی زمین و دنیای فیزیکی است اما اتصال به انرژی حیاتی زمین چندین پیامد دیگر دارد وقتی می فردی به انرژی حیاتی زمین متصل شده است، شخصیتی با ثبات، واقع بین و درخور اعتماد را توصیف می کنیم که مستعد خیال بافی نیست. یوگا می که وقتی ذهن و جسم با هم همسو هستند، شما به انرژی حیاتی زمین متصل هستید. علائم اصلی متصل بودن به انرژی حیاتی زمین شامل این گذینه هاست. در بدن خود راحت هستید، از نظر جسمی احساس امنیت می کنید، شما به سهولت تحت تاثیر محرک های خارجی قرار نمی گیرید. از بودن در اینک و اینجا استقبال می کنید، زیست آهنگ پایداری دارید و از نظر عاطفی احساس صبات می کنید. اینها ویژگی هایی نیستند که دستیابی به آنها را در دستور کار قرار دهید، آنها نتیجه طبیعی تعادل در چاکرای اول هستند. تجسم کنید که آگاهی سعودتمند از چاکرای تاجی به طرف پایین جاری می شود، از ستون فقرات عبور می کند، سپس از پاهایتان به درون زمین حرکت می کند. وقتی هیچ مانعی در تمام این مسیر وجود ندارد، در تعادل کامل و پویا هستید. اتصال به انرژی حیاتی زمین را می توان اولین پایه در بازی زندگی نامید اما در این کتاب من در پایان به آن پرداختم سیستم چاکرا به شما نشان می دهد که چگونه از بالا به پایین زندگی کنید زیرا چاکرای تاجی خاصگاه شماست بر اثر اوضاع و شرایط بیشتر مردم به زندگی از پایین به بالا نگاه می کنند و نیازهای مادی خود را در اولویت قرار می دهند دنیای فیزیکی همه چیز را فراهم می کند اما همچنین می ستاند منابع کمیاب، آب و هوای بد، روزهای سخت اقتصادی و مبارزه برای بقا تحدیدهای دائمی در این سیاره هستند آماده بودن برای تهدید باعث ایجاد استراب و ترس از دست دادن آن چه دارید می شود تعالیم یوگا همه ی نیازها از جمله نیازهای را در عوض دنیای فیزیکی در آگاهی جای می دهد. ممکن است مخالفت کنید که غذا و سرپناه خیلی ابتدایی هستند و نمی تواند چیزی را اثبات کند. با این حال اگر درباره آن تعمل کنید با استفاده از ذهن خود، قضا، آب و سرپناه برای خود فراهم می کنید. شما در حالت به اصطلاح طبیعی نیستید همه حیوانات و پرندگان از بچه های خود مراقبت می کنند تا زمانی که به اندازه کافی رشد کنند و بتوانند از خودشان مراقبت کنند. طبیعیست که این کار را انجام دهند. فقط انسان خردمند دوران پرورش را تا نوجوانی و فراتر از آن ادامه می زیرا سیر تکاملی ما در آگاهی صورت می گیرد. سیستم چکرا این را تشخیص می دهد و آگاهی را به پوتانسیید کاملش گسترش می دهد. زندگی مدرن امدتاً این ارتباط با زمین را از دست داده است. بازگرداندن این ارتباط می منجر به برخی تجربیات دراماتیک شود. ماتیو، دوستی که یکی از متحول کننده ترین تجربیات زندگی خود را برای من بازگو کرد، این موضوع را به من اثبات کرد. من پیشینهی پرمشقت با پدری الکالی و مادری گرامی اما بی تفاوت دارم. از آنجا که می که خشم انباشته شده زیادی در من وجود دارد، مراقبه را آغاز کردم و می افراد شادتر را در اطرافم ببینم. به همین سادگی بود، بدون انگیزه های معنوی یا هیچ چیز دیگر. در واقع همه اتفاقها برای من نوعی تلنگر بود، از درون آرامتر شدم و کمتر خشمگین می شدم. هنگام این که در وضعیت ذهن آرام قرار گرفتم جسابیت آن افضایش یافت. آنچرا که فکر می کردم سعادت باشد تجربه کردم. یک روز نشسته بودم تا مراقب کنم و در عرض سی ثانیه احساس شعفی خفیف و نااشنا ناگهان بسیار شدید شد. احساس کردم که تا الان چنین لحظه ای را هرگز تجربه نکرده بودم. سپس موجی از عشق مرا فرا گرفت و من به وضوح احساس کردم که این اشق مادری است. از درونم فبران کرد، نه از یاد مادرم. از آنجایی که یک مرد بودم، هرگز به ذهنم خطور نکرد که میتوانم احساس مادری کنم. اما اینجا بود، گرم و زنانه. تجربه بیش از پنج دقیقه به طول نینجامید. اما واقعا احساس می کنم که موجب دگرگونی من شد. من به یقین می که مادر الهی واقعی است زیرا لمس او را تجربه کردم. هر سنت معنوی نوعی از مادر الهی را تاصیف می کند که به ندرت کسی در دنیای سکولار مدرن آن را تصدیق می کند. هفت چکرا؟ نشان دهنده مکان‌هایی در درون ما هستند که باید آنها را کشف کنیم تا بدانیم واقعاً چه کسی هستیم. چاکرای اول به شما می‌گوید که شما فرزند زمین هستید و این ادراک سعادتمند است یا باید باشد. یکی از جنبه های زندگی مدرن این است که ما از زمین بدون توجه به آن بهره‌برداری می‌کنیم. موجود زندهی که به مسابه مادر طبیعت شناخته می شود، صفات مادرانه خود را از دست داده است. این انحرافی آشکار از سنت هزار ساله است که مراکز انرژی را در اطراف طبیعت به عنوان خاصگاه فراوانی متمرکز کرده است. بنابراین، به اتصال مجدد با زمین، بسیار بیشتر از هر چیزی که انتظارش را دارید، باید توجه شود. آزمون، چقدر به انرژی حیاتی زمین متصل هستید؟ هنگامی که به زمین متصل هستید، طبیعت فیزیکی شما منبعی از سعادت است. با این حال، بیشتر مردم تجربه عکس دارند، درباره بدن خود قضاوت می کنند، از بلایای طبیعی می و متقدند که میکرو ارگانیزم ها اشکال اساسی حیات روی کره زمین همگی میکروب هایی هستند که باعث بیماری می بعضی از افراد با وضعیت فیزیکی بدن خود راحت نیستند. برای اینکه ببینید چه نتیجهی می تواند داشته باشد به این ده سآل اساسی توجه کنید. 1. آیا تصویر بدنی خوبی دارید؟ بله خیر دو آیا لمس فیزیکی را دوست دارید؟ 3. آیا تمام شب به راحتی و خوب می‌خوابید؟ 4. آیا از سن خود راضی هستید؟ 5. آیا احساس می‌کنید که نگرش خوشبینانه نسبت به رابطه جنسی دارید؟ 6. آیا از حضور در طبیعت لذت میبرید؟ 7 آیا برای شما آسان است هر زمان که تمایل داشتید ذهن خود را متمرکز کنید؟ 8 آیا بازه ی توجه طولانی دارید؟ 9 آیا آری از نگرانی از سلامتی خود در آینده هستید؟ 10 آیا از فعالیت بدنی لذت میبرید؟ اگر بیش از چهار بار به نه پاسخ دهید ممکن است واقعا به روشی متعادل متصل به انرژی حیاتی زمین نباشید من ملامت نمی کنم یا سنج نمی کنم شما را نگران کنم زندگی مدرن در دنیای غرب به طور فزاینده ای بی‌تحرک و ذهنی است فرصت فعالیت بدنی برای میلیون ها کارمند اداری محدود است و سرگرمی ها و حواسپرتی هایی که ما را روی کناپه یا آنلاین نگه می دارند همیشه بیشتر می شوند. شیوه های مختلف زندگی وجود دارد که می تواند تفاوت بزرگ و کوچکی ایجاد کند و با تقویت چاکرای اول شما را دگربار به انرژی حیاتی زمین متصل کند. برخی آشنا به نظر می رسند، برخی دیگر ممکن است برای شما نااشنا باشند. مطمئن شوید که خواب خوبی دارید. یعنی 8 تا 9 ساعت خواب مداوم و بدون وقفه. در آگاهی محض متمرکز شوید. به محض اینکه متوجه شدید که در آگاهی متمرکز نیستید چند دقیقه زمان بگذارید تا خود را متمرکز کنید. تمرین یک مراقبه ساده تنفسی را به عادت روزانه خود تبدیل کنید که شامل آرام نشستن، چشمان بسته و به آرامی همراه شدن با تنفس به مدت 5 تا ده دقیقه است. اگر مدت زمان طولانی را در محل کار یا پشت میز رایانه خود سپری می کنید، هر ساعت یک بار از جای خود بلند شوید، حرکات کششی انجام دهید و چند دقیقه در اطراف حرکت کنید. وسیله ای برای بهره جسمانی پیدا کنید که به بدن شما انرژی می دهد و مطمئن شوید که ورزش کردن را از حد نمی گذرانید. اگر احساس بیقراری، آشفتگی، سردرگمی یا نگرانی کردید، این احساس را در نوتفه خفه کنید. به تاخیر نیندازید اما در عصره وقت به وضعیت آگاهی متمرکز و آرام بازگردید. از شرایطی اجتناب کنید که سیستم عصبی غیر ارادی را از بین میبرد. اینها شامل چند وظیفه را همزمان انجام دادن، تماسهای تلفنی پشت سر هم، صداهای بلند اطراف، افراد زیادی که توجه شما را میخواهند و جو متشنج میشود، با دقت به اوضاع فعلی خود در خانه و محل کار توجه کنید تا ببینید چه تعداد از این شرایط را میتوان بهبود بخشید. و در نهایت برای پیاده روی آرام به طبیعت بروید و از زیبایی و آرامش آن قدردانی کنید. حقیقت راستین متصل بودن به انرژی حیاتی زمین از نظر فیزیکی ضروری است اما چاکرای اول چیزهای بیشتری برای گفتن دارد معنویت را به معنای واقعی کلمه تبدیل به واقعیت فیزیکی می کند به عبارت دیگر فراگاهی واقعیت فیزیکی را الغا می کند آنچه در خطر است را می حقیقت راستین نامید روش تست این است که آیا افکار، احساسات، ادراکات، تمایلات و نیات شما می توانند واقعیت فیزیکی را تغییر دهند یا خیر؟ در دنیای مدرن، تقریبا همه به استثنای افراد متدین که قدرت نهایی را به خدا نسبت می استدلال مخالف را درست فرض می کنند. دنیا فیزیکی به طور پیش فرض حقیقت راستین است، زیرا از دوران کودکی به بعد، تعدادی از ما حتی استدلالی درباره آگاهی نشنیده ایم. با این حال، بحث تاثیر ذهن بر ماده در واقع بسیار قوی است و هر بار که فکری به ذهنتان خطور می کند، برای ذهن آشناست. برای فکر کردن به جمعه ای مانند ساحل پر از درختان نخل کلمات باید فعالیت مغزی ایجاد کنند و این فعالیت، ملکول های ویژهی را تولید می کند که به عنوان انتقال دهنده های عصبی شناخته می شوند که تا زمانی که عمل فکر کردن رخ ندهد در الگوی دقیقی که نیاز دارید وجود ندارد. گمان کنید آن درختان نخل را در ساحل تجسم می کنید. می بینید که در نسیم گرم سیری حرکت می کنند یا صدای امواج اقیانوس بر روی شنها را می شنوید. در این صورت هر فرایندی توسط زهن هدایت می شود و مغز با تولید ملکول های خاص متناسب با فرایند از دستورات پیروی می کند. تأثیر زهن بر ماده را می توان تا محدوده های خارقل عادهی گسترش داد. جهان در سال 2019 از شاهکارهای یک راهب بودایی تبتی در تایوان که آگاهی همچنان بدن او را پس از مرک کنترل می کرد، مابحوث شد. جسابیت این موضوع به حدی است که مطالعه گزارش کامل روزنامه تایمز هند ارزشش را دارد. یک روشنبین بودایی تبتی در تایوان پس از اینکه در 14 جولای مرگش به طور رسمی اعلام شد، وارد حالت مراقبه معنوی نادر توکدام شده است. اداره مرکزی تبات سیتی‌ای گفت توکتام یک پدیده بودایی است که در آن آگاهی استاد روشنبین به رغم مرگ فیزیکی در بدن باقی می ماند. اگرچه از نظر بالینی مرد اعلام می شود، اما بدن آنها هیچ نشانه ای از پوسیدگی نشان نمی دهد و برای روزها یا هفته ها بدون نگهداری تازه می ماند. تحقیقات علمی در خصوص این پدیده چند سال پیش به درخواست رهبر معنوی طبت دالایی لما انجام شد. دفتر سی در تایوان در پستی اعلام کرد که پس از مرگ بارینی روشنبین بودایی تبتی در چهارده جولای بقایای فانی گش گیاتسا به محل سکونت او بازگردانده شد. در آن زمان تایوان در اوج تابستان بود اما با مشاهده بقایای فانی هیچ چیز تشخیص دادنی نبود. کارکنان دفتر طبت در روز پنجم جسد را مجددا بررسی کردند تا علائم پوسیدگی و تجزیه را مشخص کنند. همزمان، توسط متخصصان پزشکی بررسی شد که حیرت کامل خود را از این پدیده ابراز کردند. حساد ناپذیری بدن یک قدیس پس از مرگ در آین کاتولیک رومی سبت شده بود. با این حال، سنت های شرقی به خلق چنین مراقبهی مبادرت ورزیدن که آگاهی فرد را قادر می تا از طریق تمرین منظم به چنین قدرت دست یابد. درباره روشنبین تایوانی دالایی لما بلا فاصله دستور داد که محققان بیترف برای تعیید این پدیده وارد شوند که نظرشان در ادامه این گزارش آمده است در 24 جولای فیزیکدان یوان تسلی و دستیارانش از مرکز تحقیقات تایوان آکادمی سینیکا وارد شدند و اولین معاینه پزشکی قانونی را روی جسد راهب انجام دادند. سیتی تی ای بیان کرد فشار خون جنازه در 86 سالگی کاملا نزدیک به یک انسان زنده بوده است. علاوه بر این لطافت پوست، وضعیت به ظاهر تجزیه نشده ی اندامهای داخلی، درخشش و گرمای صورت تحت بررسی دقیق مشخص شد. معاینه یک پزشک فعالیت مغزی در خور توجهی را نشان داد. بعد گمانان ممکن است از این یافته استفاده کنند و استدلال کنند که راهب واقعا نمرده است. اما مرگ مغزی در عرض سه دقیقه پس از توقف قلب آغاز می شود، ولی در این مورد روزها بدون فعالیت قلبی گذشته بود. در سنت یوگا این امر یک موجزه تلقی نمی شود، بلکه نمونه ای از سیدهی هاست. قدرت آگاهی گسترش یافته، موضوعاتی که بیشتر مردم آن را ما طبیعی می خانند در حالی که اکسهایی برای ثبت واقعی بودن سیدهی تایوان گرفته شده است، ما فاقد شواهد مشابهی برای سیدهی هایی مانند همزمان در دو مکان بودن، زندگی برای دهه ها یا حتی قرن ها فراتر از طول عمر عادی انسان یا معراج هستیم. یک سیدهی شواهدی ارائه می دهد که نفوذ آگاهی در ماده از بدن انسان آغاز می شود. هیته آگاهی درونی اینجا یا بیرونی آنجا نیست بلکه هر دوست، حتی این نیز به درستی وسط حیطه آگاهی را بیان نمی کند. آگاهی مکان ندارد. بدون بود است. زیرا نمی توانید آن را با واحد های مرسوم مثل فوت و اینچ، انس و پاند، ساعت و دقیقه و یا اینجا و آنجا اندازه گیری کنید. من می که درک تصور از هیچ کجا و همه جا در یک زمان دشوار است، یکی از روکردهایی که در حال حاضر در بین فیزیک دانان محبوبیت پیدا کرده است، این است که کل جهان را به عنوان آگاهی ببینیم. این بسیار دور از فرض صفت و سختی خواهد بود که جهان کاملا فیزیکی و تصادفی است. اما وقتی نوبت به آگاهی میرسد، فیزیک به گوشه ای رانده می شود، هیچ کس نمیتواند ثابت کند که ترکیب خاصی از اتم ها و مولکول ها میتوانند فکر کنند، اما با این حال بدیهیست که ما انسان ها میتوانیم. اما انطور که فرایندهای فیزیکی نمیتوانند پدید آمدن ذهن را توضیح دهند، میتواند به آسانی، غذابتی اجورانه کرد مبنی بر اینکه که نوعی بزر آگاهی یا آگاهی نخستین از ابتدا بخشی از خلقت بودند، مانند جاذبه که همواره بخشی از آفرینش بوده است بدن سعادتتمند. ما در اینجا نگران مباحث کیهانی نیستیم. من جهان آگاه را مطرح کردم فقط برای اینکه نشان بدهم علم مدرن شروع به موافقت با یوگاه کرده است. آگاهی بنیان و شالوده است. یوگا با گفتن این جمله پارا فراتر می برد. آگاهی حقیقت راستین است. این کاملا شایان توجه است که فقط یک مرحله درگیر است. بیشتر مردم از جمله 99 درصد دانشمندان تصویر ذهنی از زندگی روی زمین دارند که با موجودات تکسلولی بدوی مانند آمیب و جلبک های سبز آبی آغاز می شود. اینها چند میلیارد سال قبل از ظهور موجودات چند سلولی در زمین بودند. سپس میلیاردها سال دیگر طول می کشد تا به دوره دایناسورها برسیم. با این حال، ذهن هنوز صدها میلیون سال در آینده جلوتر است. اگر فرض کنید که فقط انسانها آگاه هستند، وجود ما فقط یکی دو میلیون سال پیش آغاز شده است، برای اینکه این را به مقیاس کاهش دهید، اگر سن زمین را به عنوان یک روز 24 ساعت اندازه گیری کنید حیات از نمه شب شروع می شود. زندگی بدوی در ساعت 6ش موجودات چند سلولی در حوالی ظهر و اجداد انسانی ما در بیسانانی آخر مانده به پایان روز شروع به ظهور می کنند. با این حال، اگر آگاهی در طول آفرینش ساخته شده باشد، این محاسبه است هیچ دوره زمانی هرچند که هم بدون آگاهی وجود نخواهد داشت. نه تنها آگاهی همیشه وجود دارد، بلکه در اتمها و مولکولها نیز نفوز می کند. حالا دیگر لازم نیست بگویید که اتمها و مولکولها چه وقت یا کجا فکر کردن را یاد گرفتند. فکر کردن هر کجا که نگاه کنید اتفاق می افتد. فقط تفکر انسان در کلمات و مفاهیم نیست، آن هوش خلاقه است. جریان هوش خلاقه به همان چیزی تبدیل می شود که داروینیان آن را تکامل می نامند. تفاوت بزرگ این است که آگاهی همزمان با تکامل صفات فیزیکی تکامل می یابد. اگر هر اتم و مولکول در بدن شما بخشی از جریان هوش خلاقه باشد، پس هر سلول نیز همینطور است. زمانی که علم پزشکی که از فعالیت هوشمند سیستم ایمنی شگف زده شده بود سیستم ایمنی را هوش شناور نامید دری برای مشاهده هوش در سلول هایی گشوده شد که به فضای بسته زیر جمجمه محدود نمی شدند. شهر دادیم که بدن چگونه جلوگر هوش خلاق است اما نتیجه گیری بزرگتری وجود دارد که این است اگر بدن شما هوش خلاق را متجلی می کند، شما در بدنی از سعادت زندگی می کنید. در لحظات شادی و کامیابی، همه افراد یک واکنش بدنی مانند سوزن سوزن شدن، سباکی یا انرژی بیش از حد را احساس می کنند. ما از شادی فریاد میزنیم و می رخصیم، زیرا بدن راه خروجی برای تقیان سعادتمندی خود می خواهد. با این حال، یوگا به راهب بودایی تبتی که بدنش از مرگ جان سالم بدر برد، به عنوان نمونه بهتر از بدن سعادتمند اشاره می کند. آگاهی سعادتمند در بدن او بود که آن را پس از مرگ دست نخورده حفظ کرد. به این دلیل ساده که در زندگی آگاهی در وحله اول بدن همه را دست نخورده نگه میدارد. در سنت معنوی هند بدن سعادتمند یک نام دارد آناندا مایا کوشا آناندا به معنی سعادت و کوشا به معنی بدن است نیازی نیست وارد جز یاد شویم اما جالب است که سیستمی از کوشاها وجود دارد که از بدن سعادتمند به بدن افکار، احساسات و در نهایت بدن فیزیکی خبوت می کند این سفر شباهات زیادی به سفر هفت چاک را دارد. از این جهت که آغاز آن آگاهی سعادتمند نابست و نقطه پایان است. من با دور کردن این بحث از زندگی روزمره ریسک کرده ام. با این حال اگر تا این مرحله ادامه داده اید در آستانه یک آهای شگفتنگیز هستید. متوجه خواهید شد که آگاهی و همه چیز اطراف شما یکی هستند. تمام زمین جسمی از سعادت است. هیچ جدای بین جریان هوش خلاق در اتم ها و ملکول های بدن شما و جریان هوش خلاق در ابرها، درختان، آمیبها، چامپانزه ها و ستارگان وجود ندارد. شما ذهنی ندارید که توسط دنیای فیزیکی احاطه شده باشد. جایی که ماده بیف حاکمرانی می کند. آگاهی چسبی است که خلقت را در هر سطحی به هم پیفند می دهد. این آها اهمیت زیادی در زندگی روزمره دارد. مثلا، افکار و خواستهای شما به جهان بیرونی آنجا متصل است. از طریق این ارتباط رویدادهای اطراف خود را خلق می کنید. اگر مقصودی نزدیک به خاصگاه آگاهی سعادتمند داشته باشید، قصد شما محقق خواهد شد در خواستگاه آگاهی شما دقیقا همان آگاهی کیهانی است یوگا می آموزد که ارتباط قدرتمندی بین شما و جهان هستی وجود دارد که از محدود من مجزا فراتر می روید با تقویت چاکرای اول شما در بدنی از سعادت ساکن می که در همه جهات گسترش می آبد بیایید نگاه جرفتری به این داشته باشیم که واقعا چگونه کار می کند اتصال شکتی. ارتباط کیهانی شما با تجربیات روزمره آغاز می شود سپس به قلم روی ناشناخته گسترش می آباد این واقعیت ساده برای اثبات واقعی بودن ارتباط ذهن بدن کافی است که می توانید به صورت ارادی و ارسال این تمایل که از طریق سیستم عصبی مرکزی به ازولات بازو می رسد، بازوی خود را بالا ببرید. همچنین زمانی که به چیزی فکر می کنید و لحظه بعد آن متجدی می شود، تجربه ای از همزمانی وجود دارد. نام دوستی به ذهن می آید و او یک دقیقه بعد برای شما پیامک می فرستد کلمه تصادفاً به ذهن خطور می کند و یک نفر بلا فاصله آن کلمه را می گوید همزمانی به عنوان یک همرویداد معنیدار تعریف می شود اما توضیح علمی برای آن وجود ندارد می توانید به دوستی که پیامک ارسال کرد این توضیح را بدهید که یکی از شما قیب گوست. مسئله واقعی این است که چگونه ذهن یک فرد با دنیا که بیرون ارتباط برقرار می کند. در یوگا توضیح این موضوع به وسیله نیروی به نام شکتی در سانسکریت است. کلمه ای که طیف وسیعی از معانی دارد. انرژی، مهارت، قفت، تلاش، قدرت و توانمندی. اگر به اندازه کافی شکتی دارید، ارتباط شما با دنیا قوی است. بدون شاکتی، شما جایی بین درماندگی و زندگی پر از کشمکش و شکست خواهید بود. شاکتی هم برای ذهن و هم برای بدن کار دارد. شاکتی برای بلند کردن یک وزنگ سنگین و همچنین 43 زب در 89 در سر شما لازم است. اما شاکتی که در این کتاب روی آن تمرکز کرده این، حوشمندانه و خلاق است، به همه رویدادها از انفجار بزرگ تا نفس بعدی که میکشید کشید نیرو می دهد شاکتی کیهانیست در اساتیر هندی شاکتی نیمه زنانه شیوا است که چهره های دو قلوی خلقت را تشکیل می دهد شیوا بر قلم روی نامرعی همه توانمندی ها حکومت می کند در عین حال شاکتی توانمندی ها را به دنیای فیزیکی حمل می کند رقص او رقص آفری است. وقتی شکتی شخصی می شود بدن همانطور که طراحی شده است با همبستگی کامل در هر سلول عمل می کند شما تعادل، سلامتی و رفاه را به صورتی که از ابتدا داده شده تجربه می کنید وقتی چیزی شروع به خارج شدن از تعادل می کند یا ضعف جسمانی و کمبود رفاه را تجربه می کنید شکتی دوچار اختلال می شود هیچ جادوی برای بازیابی آن وجود ندارد. آگاهی محص تنها چیزی است که شما نیاز دارید. در مرکز آرام و ساکت شما باری دیگر به شکتی یک کانال باز می دهید به همین دلیل است که طبق گفته یوگا مراقبه برای بدن سودمند است. تأثیر مفیدی که مراقبه بر فشار خون، زربان قلب، ایمنی و غیر دارد این است که مراقبه شما را مقیم آگاهی محض می کند. حالا در نظر بگیرید که هر فکری شکتی دارد و این معنی که تفکر امواجی از انرژی را به همه جای خلقت می فرستد. شما از طریق شاکتیی که دارید با دنیای فیزیکی ارتباط برقرار می کنید و گاهی اوقات ممکن است یک فرد خارقل العاده از جایی بلند شود و تبدیل به بودا، ناپلان یا انشتن شود. زیرا یک نیروی توقف نپذیر آنها را به جلو می راند. با این حال شاکتی نیروی سرنوشت نیست و مانند داشتن برق بیشتر در یک شبکه برق نیست شکتی وجود دارد تا هر هران را که نیاز دارید برای شما به ارمغان بیاورد اما هدفی که آگاهی سعادتمند همواره دارد تا آنجا که به یوگا مربوط می شود همه چیز در زندگی شما باید همزمان باشد اگر به نام کسی فکر می کنید و آن شخص برای شما پیامک ارسال می کند این باید یک قدم کوچک به نفع شما باشد اگر شغلی را که می پیدا کنید باید در صورتی آن را به دست آورید که برای تکامل شخصی شما مناسب باشد. اینجاست که تفکر متعارف از هم می باشد. شاید این جمله را شنیده باشید که خدا یا شکرت به خاطر دعاهای بی پاسخمان. رویدادهای زیادی وجود دارد که فکر می کنیم برای خوب است و بد به نظر می و اجتناب از آنها موه است. شکاف در تجربیات زمانی بسته می شود که آنچه میخواهید اتفاق بیفتد همان چیزی باشد که باید اتفاق بیفتد. پس چگونه به آنجا دست یابید؟ مواقعی وجود دارد که احساس می کنید همه چیز طبق خواسته‌ی شما پیش میرود. هیچ چیز نمی تواند شما را متوقف کند و دنیا فوق‌الاده است. شما با هوش خلاق همسو هستید. اما در روزهای دیگر احساس می کنید خیلی بدحال هستید و روزهای سختی را سپریم می کنید. امریک تفاوت را ایجاد می کند یک نیروی بیرونی، سرنوشت یا تصادف نیست. عامل تعیین کننده ارتباط و همسوئی شما با شکتی است. با همکارم و یک متفکر برجسته در خصوص آگاهی، آنوب کمار به سه مرحله رسیدیم که نشان می دهد ارتباط شکتی شما چقدر قوی است. به جهت سهولت، اینها را ذهن یک، دو و سه می نامیم. ذهن یک شما به زندگی به عنوان یک فرد مجزا نگاه می کنید. شاخص پیش روی ذهن یک، حس قرار گرفتن در بدن است، در نتیجه محدود شدن توسط بدن، ذهن یک جهان فیزیکی را به صورت مجزا تشخیص می دهد. همانطور که خودمان را می بینیم، جهان را نیز می بینیم. اگر خود را محدود به بدن خود کنید، دنیایی از چیزهای جداگانه را میبینید که شما نیستند. در ذهن یک، شما زمین حاصل خیز را برای ایگو فراهم می کنید. من، خودم و مال من بسیار مهم می شود این کاملا منطقی است زیرا دستور کار شما به عنوان یک فرد مجزا تماما درباره تجربیات لذت و درد است که بدن احساس می کند حتی یک حالت روانی مانند استراب ریشه در بدن دارد چیزی که از آن می هراسید به یک احساس دردناک درونی اینجا ختم می شود از هر لحاظ ذهن یک تحت سلطه بلا و نه است که برای شما پیش می آید. ذهن یک در دنیای سکولار مدرن کاملا درست و طبیعی به نظر می رسد. ذهن یک در تمرکز کلی علم بر بقای فیزیکی از میکروبها و ذرات زیر اطومی از انفجار بزرگ تا جهان چند گانه منعکس می شود. یک کتاب پرفروش از سال 1970 بدن ما، خود ما، برای همه ما در ذهن یک صدق می کند. تنها شکتی که دارید در درون بدنتان است. اما طور که تنها هویت شما در درون بدنتان است. این شکتی بسیار قدرتمند هر سلول را کنار هم نگه میدارد اما محدود است. وضعیت آگاهی شما هیچ چیز را در دنیا بیرون تغییر نمی ذهن دو ذهن دو بر وحدت ذهن و بدن متمرکز است. لسومی ندارد که خود را در یک بسته فیزیکی از گوشت و استخان محبوس ببینید. در واقع این چارچوب فکری می تواند کاملا وضعیت را تغییر دهد. در عوض انزوا اتصال وجود دارد. در عوض رویدادها فرایند وجود دارد. در عوض مواقع سخت انعتاف ناپذیر جریانی پیوسته وجود دارد. در عوض اینکه زندگی را به بخش هایی تقسیم کنید که باید تحت قضاوت، تجزیع و تحلیل، پذیرش یا رد قرار گیرند، در جریان تجربه آرام می گیرید. ذهن دو به شما این امکان را می دهد که خود را واضح تر ببینید. زیرا در واقعیت ارتباط ذهن بدن یک کل واحد است. هر فکر و احساسی در هر سلولی اثری ایجاد می کند. شما می توانید آگاهانه از طریق قصد در کل سیستم تغییر ایجاد کنید. ذهن دو جرفتر از ذهن یک است. شما در درون آنچه واقعا هستید جرفتر حرکت کرده اید و وضعیت آگاهی شما بسیار مهم می شود شما هستید که تجربه می کنید، مشاهده می کنید و می دانید. برای بیشتر مردم ذهن دو هنگامی شروع به ظهور می کند که مراقبه یا یوگا انجام می و به ذهن آرامی دسترسی پیدا می کنند که در زیر سطح ذهن بیغرار فعال است با این کشف راهی برای دیدن فراسوی جستجوی بی سمر مجزای ایگو برای کمال، لذت، قدرت یا موفقیت وجود دارد. اما انطور که بینشی جرفتر از خود و زندگی در تمام تجربیات قوته برست، ذهن دو ایجاد می شود. به همان انداز مهم، شما آغاز به دیدن خود می کنید که در جهان منعکس شده اید. متوجه می که بسیاری از اتفاقات خوب و بد تحت تاثیر وضعیت آگاهی شما بوده است. زندگی مبتنی بر خود آگاهی بسیار بهتر از زندگی مبتنی بر خلق و خوی، هوا و حوص، امیال، تعصبات و باورهای ثابت است. ارتباط شما با شکتی در حال تحول است. دیگر محدود به بدن شما نیست. اما هنوز در دنیای بیرون قدرتمند نیست. ذهن سه ذهن سه آگاهی را فراتر از تمام مرزهای ساخته شده توسط ذهن گسترش میدهد و معنای کلمه من را به طور اساسی تغییر میدهد. آگاهی گسترده شما را در میدان بی نهایت حوش خلاق قرار می دهد جایی که همه چیز به عنوان توانمندی هایی وجود دارد که از طریق قدرت شکتی ظهور می کنند این نه تنها نمای روشنی از زندگی شماست بلکه خود شفافیت است زیرا هیچ چیز یا فرایندی وجود ندارد که مانع دید شما شود مرزها وجود ندارند گذشته با آیندهی وجود ندارد واضح ترین دیدی که می توانید داشته باشید اینجا و اکنون است. انگامی که هیچ مرزی برای محدود کردن دید شما وجود ندارد، شما بیدار هستید که امکان می دهد وقایه را بدون هیچ فیلتری ببینید. گذشته شما دیگر شما را اسیر نمی کند. بنابراین آزاد هستید. به همین دلیل است که ذهن سه برای قرنها به عنوان رهایی شناخته می شود. شما میتوانید به شکتی اعتماد کنید که به طور خود به خود از شما حمایت کند. همانطور که سلول های شما اعتماد کرده اند. ذهن سه به روی همه گشوده شده است اما یک مانع بزرگ وجود دارد که باید بر آن غلبه کرد و آن این است. ما با دریچه که همه چیز را از آن میبینیم متقاعد شده ایم. هر چارچوب فکری واقعی و کامل به نظر میرسد. شما در ذهن یک با مفاهیم فیزیکی همزاد پنداری می کنید. نکته مهم بدن شماست. در ذهن دو شما با حیطه آگاهی خود آشنا می شوید. زیرا تجارب و احساساتی را به ارمغان می که فراز و نشیب دارند. از آن جایی که رسیدن به آن سفری درونی می ترابد، ذهن سه جایی نیست که اکثریت غریب به اتفاق نوع بشر هستند. با این حال، هر تجربه ای از شادی، عشق، شفقت، زیبایی، آرامش و خودآگاهی ایگو را کنار می زند و برای لحظه ای در می که بیدار بودن طبیعی و بسیار مطلوب است. شما با نگاهی اجمالی ساده و طبیعی از آنچه واقعا هستید، فراتر از من می روید. شما خود میدان آگاهی هستید، بی حد و حسر و آزاد. هر تجربه ممکنی از اینجا سرچشمه می گیرد قبل از اینکه که فیلترهای ایگو، جامعه، خانواده، مدرسه و خاطرات دردناک دید شما را تیر و تار کند. ذهن سه آزادی است که وقتی متوجه می‌شوید که قرار بود همیشه آزاد باشید به دست نیاورید در هم ریختگی را به سودایید آزادی به سادگی وجود دارد ذهن یک با ذهن دو مخلوق هستند در حالی که ذهن سه زاده نشده است و مخلوق نیست رقص شکتی جافدانه است و وقتی به آن میپیوندیم احساس اجتناب ناپذیر این است که بالاخره به خانه برگشتیم. من کافی هستم از این پس خانه شماست. فعال کردن چکرای ریشه این چکرا هر جنبه ای از اتصال به زمین را تقوییت می کند. چه از نظر جسمی و چه از نظر ذهنی. چند کار که میتوانید به طور کلی برای هر چکر را انجام دهید، اینها هستند. در آگاهی محض ساکن شوید. انگامی که متوجه شدید که در آگاهی محض ساکن نیستید، چند دقیقه زمان بگذارید و خود را متمرکز کنید. بر منترای لام مراقب کنید. بر فکر متمرکز من همیشه امن و ایمن هستم یا من کاملا به انرژی حیاتی زمین متصل هستم مراقبه کنید. سایر مراحل به طور خاص با هدف فعال کردن چکرای افل است. تمرین متمرکز کردن برای احساس در خانه بودن در بدن شما ضروری است. دلهوره و پریشانی شما را از حالت اتصال خارج می کند. تمرین شماره یک به همین ترتیب سودمند است. تمرین یک. آرام بنشینید. هر دوپ را روی زمین قرار دهید و بدن خود را قم کنید. عمل دم را تا زمانی که قفسه سینه شما به راحتی پر شود انجام دهید. در حین بازدم، پرتوه سفیدی از نور را تجسم کنید که در ستون فقرات شما حرکت می کند. نور را ببینید که در زیر ستون فقرات دونیم می شود. از هر پا پایین می آگد. از طریق پاها به زمین می روید. پنج تا ده بار تکرار کنید. لازم نیست این کار را در هر نفس تکرار کنید. فقط هر زمان انجام دهید که احساس آمادگی کردید اگر دستهای خود را در دامان جمع کنید و شانه های خود را پایین بیاورید در اتصال به زمین موثرتر است شما انرژی شخصی خود را با زمین خواستگاه حیات و متعلق به دنیای فیزیکی متصل می کنید تمرین شماره دو در یک روز گرم و آفتابی، یک قطعه زمین چمن تمیز، ترجیحاً در مکانی آرام در پارک یا حیات خلوت خود پیدا کنید. صاف به پشت دراز بکشید. چشمانتان را ببندید. پاهای خود را از هم باز کنید و بازوهای خود را در پحلوی خود قرار دهید. مطمئن شوید در این موقعیت احساس راحتی می کنید. احساس کنید وزن بدنتان شما را به نزدیکی زمین می کشد. تصور کنید بدنتان چنان سنگین می شود که هیچ فاصلهی بین خود و زمین احساس نمی کنید. وقتی این حس را داشتید، امیغ و راحت نفس بکشید. با هر باردم، انرژی زمین را جزب کنید که از طریق زمین بالا می آید و بدن شما را اشباه می کند. می توانید این را به مسابه گرما احساس کنید یا تجسم کنید بدن شما آکنده از نور تلایی می شود. با هر بار بازدم به سادگی استراحت کنید و اجازه دهید نور طلایی و گرما در شما ساکن شود. 5 تا 20 دقیقه یا هر طور که برای شما مناسب است تکرار کنید.